بسته چیزی به نظرمون نرسید. نه، چیزی به نظرمون نرسید، ننوشتیم. خب؟ حالا s 1 او 4مون چی میتونه باشه؟ s 1 که اون سازمانی او 4مون که اصلا مبانی ورود به بازار. باز چیزی به نظرمون نرسید، ننوشتیم. ببین حتما نباید هر مش موردی رو بنویسید. چیزی به نظرمون نرسید؟ بنا ننویسید. خب؟ یا مثلاً برند استونه تحریم او یکونه است و یک چی میتونه باشه استون چیه برند اویا تحریمه مثلا است و یکمون چی میتونه باشه برند تحریم به نوعی شاد در بازار باشه چون رسوخ در بازارو ای چون وسط در بازار رو اینجا نوشتی دو دوباره تکرار نکرد. دقت تو این شید تکرار نکنید اگر استراتژی رو یک بار نوشتی بار دوم یا بار سوم ننویسید همون یک بار کفایت میکنه برای مثلا برای او 1 اس چیه؟ وفاداری پرسنل او 1 تحریمه خب او 1 او 2 اس او سه. سیستم های انگیزشی ما با وفاداری داریم از اون برم یه سری فرصت هایی تو بیرون بازار دارد. در قالب تحریم در قالب مانع ورود به بازار خوبه وفاداری پرسونال رو ایمپروو بشه بهبود ببخشید سیستم های انگیزشی رو بمون یک برنامه یا استراتژی اینجوری گذاشتن هسته <تصفيق> چه طور میشه بهبود بخشید به پرسنل رو با انگیزه تعریف کنید انگیزه وقتی پرسنل وفادارن به سازمان یعنی ستیسفاین یعنی راضیان ولی ممکنه بی انگیزه باشن درسته به خاطر همینه که ما علاوه بر رضایتمندی اومدیم مثلا میگم رو انگیزششون هم کار خب بریم سراغ WO ها انگیزه خیلی سخت انگیزه ایجاد بله دقت کنید آره برای این دبلی یکمون چیه؟ نقدینگی درسته؟ ها yeah. یک یکمون چیه؟ تحقیم، حجم، رقابت، کار و خدمات، جایگزی، مقاله ورود به بازار دبلی یک، او یک، او دو، دبلی یک، او سه، دبلی یک، او چهار، چی نمشتیم؟ اخسر. اخسر ما. اخسر ما این یعنی شد یک برنامه استراتژیک. متوجه میشید؟ <تصفيق> <تصفيق> یا برای این دبلی دومون که سیستم؟ <تصفيق> مکانیک w 2 دو 1 W2O2 w چی نشتیم؟ دانش سازمانی دانش سازمانی خب یا برای W4O1 یک w 4 اون چیه؟ تجهیزات و برای این که داریم، مثل تحریم هشتم رقابت کالا و خدمات جایگزین موانع ورود به بازار خب چی داشتیم؟ برون سپاری برون سپاری, برون سپاری, برون سپاری <وزد انتقال> وقتی شما هر مشکل داره و یه سری فرصت دونه بورس سپاری ولی علاوه بر توسعه رو نوشتین یه برای د چهار او 4 او 2 4 او 3 د4 او یک, او او چار او چار. توسط ها یک برنامه استراتژیک لحاظ کردید. gerekتی برازیارون تهاجمی باشه هم سپاری رو انجام بدید هم در این اه تو اه بر خیلی دید تجهیزات داشته باشی. اگه مشکل تجهیزات درافتس مارتیسه توزو حالا توی اسمو بر برای کم کردن هزینه با توسعه تجهیزات با چیکار کنیم جان اگه برای کم کردن هست. هزینه برای توسعه تجهیزات با کار برای کم کردن هزینه توسعه تجهیزات اون نیست که توسعه تجهیزات چیزه در اون هزینه نیست, که <تصفح> <تصفح> اون نیست. اصلا, اصلا هزینه نیست تجهیزات نیستش توی موارد مالی و توی سیستم مالی و حسابداری شما یک دستگاه خریداری میکنید جز جوزه شما حساب نمیشه فقط استحلاق جز جوزه حزینه میده ولی خود دستگاهی که خریداری میکنه، حزینه یه سرمایه گذاریه موقع حساب قایم مالی سرمایه. محمد محمدی گفته باشه، جار میشه سرمایه‌ای. می نه من نه همون پولی که برداشت. اون چه سرمایه‌گذاری؟ آقا اونم میشه هزینه میشه به دست بیارید اینوستمنت. پول بالا در میاره. خب اسکت ما چی بود؟ اسکت ما چی بود؟ تیم اینجا داریم به نام مشتریان. و تامین کنندگان S1 t یکو چی نوشتم من؟ بزنبو. افضایشه کیفیت محصول S1 t دو رو چی نوشتم؟ ترویج برند نه نه S1 T2 S1. S1. S1 چی بود؟ S1. دانشه سازمانی بود؟ T2 مون چی بود؟ تامین کنندگان مدیریت ارتباط رو تمیم کنندگان روز کنندگان S2 مون چی بودش؟ S2 مون برند, برند بود, برند. برند. برند بود. T1 مون چی بود؟ مشتریان تدریج برند، یعنی براند سازی برای سازمان با ما, ما یک خب؟ دیگه بعد چیزای دیگه برای ST ننوشیم، برای WT اما چیزی ننوشیم ننوشیم حالا همین تعدادو نوشیم، چیزی به نظرمون نرسیم برای حالا سیستم چند تا استراتژی هران شد؟ یک، دو، سی، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت نو ده تا استراتژی شد شو یا در روضه شلوغ نمی‌کنیم که گیریم با <تصفيق> بتونیم از اون چیزی که به دست آوردیم استفاده کنیم آورد. البته دست شما بازه 16 تا برای این بنویسی 16 تا برای این 8 تا برای این 8 تا برای این 8 تا برای این اکثر ولی در هر صورت ما از این تعداد 10 تا استراتژی رو نشستیم فکر کردیم و در آوردیم متوجه‌ای؟ گرفتید پس تحلیل سعاد و نمشته رو سنده استراتژیک ش ها؟ خیلی سخته استاد دمشه این جان؟ خب؟ بله بله بله برای جلسه بعد نیه اونم رب داره استاد بله، خیلی داستان، حالا نه سخت نیستا یه استاد چرا که هنگه ها زمان می‌برد حب، دقیق بکنید ما تحلیل سوات بهتون گفتیم درست آره؟ که نقاط قوت زد فرصات و تعداد تو سازمان بکشی گیرون از تحلیل سوات رسیدیم به ماترس که وضعیت سازمان رو مشخص کنید نه تا خونه داشت <تصحيح> خیلی خوب <سوات. تصحيح> خوب آده که می رو تو خواهمه داری میمونه خب از ماتریس جیگی رسیدیم به چی؟ توز به ماتریس توس ماتریس توس برای چی بود؟ برای برنامه ریزی درسته؟ استراتژیک بود ها؟ استراتیجی ها رو اتخاص کردیم یعنی منزر اکسترک کردیم حالا مرحله بعدی QSPM یادداشت کنه QSP میشه quantitative استراتژیک process matrix کمیاتی ماتریس کمی استراتژیک ماتریس کمی استراتژیک، متوجه هستید؟ ماتریس کمی استراتژیک. این ماتریس به چه درد میخوره؟ شما الان ده استراتژی اینجا اتخاظ کرده یا نمشید دیگه درست یا نه؟ من. کدومش اولویت بالاتری برای سازمان داره؟ و کدومش اولویت پایینتری داره؟ بین این ده استراتژی استراتیژیک سازمان میخواد توی بنویسه به سمت کدوم استراتژی بد بره و به سمت کدوم استراتژی نه بره یعنی اولویت بندی استراتژی های استفراد شده از ماتریس توز در QSP انجام میشه QSPM امید عملا اولویت بندی میکنه این استراتژی هایی که اینجا نوشته شده من خواهی شکل دارم، بله جلسه آتی QSPM رو بخونید که ما سری کنا ساحت تر متوجه بشید حتما قبل از اینکه وارد کلاس میشه طول هفته اون مواردی که من جلسه بعد میخوام بگم و یه ریویوی داشت با مخصد QSPM بقیان ما خدا خدمتون میگم خب اگر سوالی هست من در خدمتون هستم مجبورا میخوی زودتر استاپ بکنم به خاطر اینکه QSPM زمان میبره اشکال نداره ما مدیریت استراتژیک تو زمانی که به شما جا نایفته کلاس N نمی کنیم اینو مطمئن بشه خب هست نکته خاصی هستش؟ آهای آه شما اون قسمت اول کلاسی نبودید بگیرید و بخونید جاش. خب من توی این دستا خب توی این دستا نمشتم دکتر مازندرانی درسته؟ درسته این فولدر رو بردارید شما رو پاورپون و این استراتیجی شیتسه پاورپون و شیت استراتیجی همین اکسل که ما هم داریم اینجور دوتا؟ از آره؟ اکسلش؟ خسرباشتی گر؟ خسرباشی هست. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه. باشه.